افسونه افسانه افسانهها ها بخشی از هویت یه ملتن هویتی که میشه در اون ردپایی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم یه سرزمین رو به وضوح دید ای که میخوام براتون روایت کنم زن ساده لح نام داره افثانه ای ایرانی با حال و هوای ایرانی که تقدیم میشه به علاقمندان به افسانههای های ایرانی روزگاران گذشته مرد جوانی بود که فقیر بود و بیبذارد به سختی روزگار میگذارند و با کار کردن در مزارع و کشزارها امرار معاش میکرد تا اینکه یک یه روز با خانم جوانی که تا حدودی سادلوه بود آشنا شد و مدتی بعد هم به او پیشنهاد داد که با هم ازدواج کنه منو تو خیلی وقتی که هم دیگر رو من مرد تنهاییم از دار دنیا هیچی ندارم نه خونه مجلدی دارم نه باغ آقا امارتی. با این حال شاید اگه با من ازدواج کنی زندگیمون روبرا بشه خب چی میگه؟ روبرا بیشه <تصفيق> اصلا با ازدواج همه زندگی ها روبره میشن <تصفيق> باور کن همین شیرین دختر مشیآور یا سوگل دختر یونس هر شد ازدواج کردن و زندگیاشون هاشون روبره شد <تصفيق> شوهر شیرین چه روز بعد از ازدواجشون مرد <تصفيق> بیچاره؟ برای چی مرد؟ مرد که زندگیشون روبره شد بعد مرد باشه <تصفيق> بهتر حرف رو عوض کنیم با تمام این حرف تو حاضری با من ازدواج کنیم حالکه حاضرم با اینکه من از دار دنیا هیچی ندارم بازم حاضری زنم بشین حاضرم هیچ خواسته ای نداریم هیچ خواسته ای ندارم زنت میشم زنت میشم <تصفيق> زن سادلوه و مرد جوان مدتی بعد با هم ازدواج کردند. زندگی اونها در نهایت سادگی و نداری گذشت تا اینکه یه روز مرد جوان با مقداری پشم به خونه اومد. بله خوششم اینا چی رو دوشه؟ پشم پشت برای چی؟ 版ی که باهاشون اون امرار معاش کنیم با پشم؟ یعنی باید اینا رو بخوریم نه نخیر باهاشون کار می کنیم بعد پول در می بعد با اون پول امرار معاش می کنیم چه کاری؟ اگه بذاری بیام تو حیاط بیدم میگم برای چه اینا رو خریدم و چطور باهاشون اشون امرار معاش اینجا نمیتونیم بگی چطور میتونیم با این امرار معاش کنیم؟ چقدر سالو و جواب میکنی زن بذار بیام داختیم؟ باشی باشی بیفرما بیفرما شو هر جان رو برما خوب اینم حالات حالا بگو جرایه این پشما چیه؟ آه آه من این پشما رو آوردم تا بدم به تو تا اینا رو بریسی و از این پشما نخ درست کنی بلکه من بتونم تو بازار نخارو رو بفروشم و با پولش بتونیم زندگیمونو بچرخونیم باشه باشه پس <تصفح> پشما رو بده برم خیالم راحت باشه که میتونی این پشما رو خوب بریسی و نخ درست کنی خیالت راحت <تصفح> تو فقط بشینه ببین من چطور با همین دستام از این پشما نخ درست میکنم <تصفح> باشه باشه ببینیم و تعریف کنیم <تصفح> باشه وقتی مرد جوان از خونه بیرون رفت، زن ساده لح هم پشما رو زیر بغل گذاشت و از خونه بیرون رفت و یه راست رفت به طرف آبگیری که نزدیک خونشون بود. همین که به آبگیر رسید خوب داخل آبگیر رو نگاه کرد تا بتونه قباغ رو که داخل آبگیر زندگی می‌کنن ببینه. ها دختر خالههای عزیزم سلام سلام <تصفيق> ای بابا مگه گوشتون نمیشنوه چرا جواب سلام منو نمیدی منم زن همسایه بیاییم بیرو ببینی براتون چی آوردم <تصفيق> یه عالم پش براتون آوردم ای چقدر سر رو صدا میکنی اگه ساکت بشین صدایی منو میشنوی آهای منم زن همسایه خونم همین نزدیکی تازه ازدواش کردم دیروز شوهرم این پشت رو آورد به هم داد تا من اونا رو برسم و ازشون نخ درست کنم و بعد نخواه رو ببره بازار بفروشه و از پولش امرار معاش کنید آه دختر خاله های عزیزم قربه های عزیز من میخوام این پشما رو بدم به شما تا شما اونا رو بریسید باشه فردا همین موقع و همین ساعت میام و رو از شما تحویل میگیرم شنیدین شنیدین چی گفتم آره با شما شنیدین چی گفتم آه. زن با قرباقه ها قول و قرارش رو گذاشت و بعد هم همه پشمایی رو که با خودش داشت انداخت تو آبگی رو به خونه برگشت شب وقتی شوهرش به خونه اومد و دید که پشما تو خونه نیست، سراغ پشما رو از زنش گرفت چیته من؟ دی؟ چیت؟ چرا از این بره حیات میری اون بره حیات از اون بره حیات میای این بره حیات پس, پس پشما که؟ چی کارشون کردی؟ بگران نباشت جوشون یعنی چی جوشون هم نه؟ اون همه پشمو من با بدبختی خریدم زن نکنه انداختیشون دور ده. یه جایی گذاشتمشون که از همه جا امتره کجا چرا به من نمیگی اون کجا یکی الان نمیتونم بگم ولی فردا که اومدی خونه میبینی که از اون همه پشچه نخویی درست کردم حالا بهتره بیای بریم شام بخوریم که کلی حرف فرات دارم شور شد؟ مرد با خیال اینکه زنش فردا قراره با یه عالم نخ اونو قافل گیر کنه به خواب رفت. فردای اون روز مرد به مزرعه رفت و زن هم راه آبگیر رو پیش گرفت. اما همین که به آبگیر رسید متوجه شد که از پشم خبری نیست در عوض آبگیر هم خشک شده. آهای! آه! کجایی؟ دور بوخو یترو کو کجوین اون همه پشمو کجا قایم کردین چه بلایی سر اون همه پشم آوردین؟ آه گوشمون چرا جواب منو نمیدی آها آه نکن دارین با هم مشورت میکنیم که سر منو کلا بذارین آره کی میخواییم به من دروغ بگین میشه یکی از شماها به من بگه چرا این آبگیر خوش شده چه بلایی سر این آبگیر آوردین اگه حرف نزنین چنون بالا سرتون میارم که مرقای آسمانم به حالتون گریه کنن آه سود باشین جه جواب نمیدی؟ آره باشه باشه خودتون خواستین همینجا منتظر بمونین تا ببینین چه خوابی براتون دیدم زن ساده دل که حسابی از خشک شدن آبگیر و نبودن پشمها ناراحت شده بود با عصبانیت به خونه رفت و کلنگی رو برداشت و به طرف آبگیر برگشت بعد هم با تمام توان افتاد به جون آبگیر تا محل زندگی قورباغه ها رو خراب کنه میتونید کلک بزنین فکر کردین از این آبگیر برین اونوردار من دیگه نمیتونم رو خراب کنم اه کی؟ حالا که شماها ها هش منو سر بنیز کردین منم خوداتونو خراب میکنم تا یادتون بمونین دیگه چنین بلایی سر من نیاری؟ گرباقه های لعنتی شما ها هنوز منو نشناختین ببینی، ببینی من چطور دارم انتقام اون همه پشمه از شما میگیرم دفعه بعدم سر من کلا بذارین بازم با همین کلنگ میفتم به جون خونهاتون اجازه نمیدم آب خوش از گلوتون پایین بره آها این دیگه چی؟ آخ چقدر شی. فا فهمیدم این خش خوده شما قورباغه ها. آره خوشم اومد. این به خوش زاکوات خودم شماها فکر کردین که میتونین سر من کلا بزاری نخیر کور خوندین این منم که خونتونو رو خراب کردم حالا که شماها پشمای منو نابود کردین منم این خشتو با خودم میبرم که دیگه هیچ وقت نتونین تو این آبگیر خونه بسازید آها اسد اصلا... اسد اصلا... حالا که اینطور شد شماها اصلا اصلا خلای عزیز من نیستین یگم نمیخوام چشمم به چشمتون بیفته فهمیدی کلی با قورباغهها ها دعوا کرد و بهشون قرض زد و خشت طلا رو برداشت و به طرف خونه راه افتاد شب وقتی شوهرش به خونه اومد متوجه شد یه خشت طلا گوشه ای از حیات افتاده مرد که از خوشحالی یه جا بند نمی شد خشت طلا رو برداشت و به طرف زنش رفت این این خشت طلا مال کیه ها تو حیات خونه ما چی کار میکنه خشت طله مال خودمونه خودم, خودم همین امروز از تو آبگیر درش آوردم اه اه شوهر جان فکر خونه قرباقه ها بود گفتی آبگیر؟ ببینم تو تو تو آبگیر چه کار میکردی؟ حکایتش مفصله من دیروز پشماییوی که آورده بودی خونه بردم آبگیر تا اونا رو بدم به قرباقه و تا برام بریسن و امروز برم بیارمشون اما امروز وقتی رفتم سراغشون دیدم آبگیر خوش شده و خبری از قرباقه که پشما رو بهشون سپرده بودن نیست؟ منم که دیدم قرباقه ها بدقونه کردن اومدم خونه و کلنگ و برداشتم و رفتم آبگیری و که خوش شده بود خراب کردم بعدم دیدم این خشته تلا وسط آبگیر خوش شده افتاده تو چقدر خوش اقبالی زن؟ پشمارو نرسیدن که نرسیدن فدای سره فدای شرم یعنی یعنی تو از اینکه قورباغه ها سر من کلا گذاشتن ناراحت نیستی معلومه که ناراحت نیستم زن تازه خیلی هم خوشحالم چرا خوشحالی چون اونا منو فریب دادن نه. خوشحالم که میتونیم با فروش این خشت طلا پول خوبی به دست بیاریم اون پشما در مقابل این خشت طلا که قیمتی ندارن زن این خشت طلا خیلی با ارزشه یعنی چی که پشما در مقابل این خشت طلا قیمتی نه چرا متوجه نیستی یعنی اینکه ارزش این خشت طلا از ارزش اون پشما خیلی بیشتره خیلی یعنی یعنی با فروش این خشت طلا میتونیم امرار معاش کنیم معلومه که میتونیم امرار معاش میکنم اونم چه امرار معاشی چطوری؟ وقتی رمزون اومد این خشت طلا رو بهش میفروشیم و بعدم با پولش یه کسب و کار درست و حسابی برام میندازیم و با کسب و کارم امرار معاش میکنیم ما دیگه ثروتمند شدیم زاد ثروتمند شدیم ثروات داشتیم ثروات صدای اون شب سر و کله مرد دورگردی که خورده ریزهایی مثل الانگو و گوشواره بدلی میفروخت تو کوچه پیدا شد زن همین که صدای اون و شنید خوشحال شد و فکر کرد که رمزون او با خشت طلا از خونه رفت بیرون خادشه <تصفح> خودشه حتما رمیزونه الان این خشت تلا رو برمیدارم و بهش میدم تا اونم به من پول بده و با پولش یک کس و گار را بدنزیم و امرار معاش کنیم <coughs> <شوشترد. متصور> آخانم ازود سلام، ازود سلام من اومدم من اومدم سلام با خشت تلا اومدم علای سلام علای سلام من تو همین خونه زندگی می کنم تاس استماش کردم به سلامتی به سلامتی من می خوام این خشت طلا رو به تو بفروشم خشت تلا؟ به به بب به بب به ببینم یکی اول بگو ببینم اسم چیه ربی مسته رو داد بی بی داد خوشت هسته ولش ولش خشت طلا رو بگیر <تصفح> میگم آقا رمزو این, می <تصفح> با این خشت از من می‌خری منو که می‌خرا رو بچ این خشت چقدر به من میدی من من من که پول ندارم ولی هر چقدر که گلت نهد میتونی از این انگوشترها و الانگوها و گوشبارها برداری راست میگی بلوه که راست میگم اشانا که دلست خوش هم بگیدار پاردو ببر همش مالو خودی فول مالو خودم چقدر خوب مالو شوهرجانم خیلی خوشحال خوش میشه خیلی خوشحال میشه شوهرجان خیلی خوشحال میشه. زن ساده به خیال اینکه تونسته چیز با ارزشی رو به ازای اون خشت طلا به دست بیاره همه بدل‌های دورهگرد و برداشت و به خونه رفت. شب وقتی شوهرش به خونه اومد متوجه شد که زنش تعدادی و گوشواره بدلی به خودش آویزون کرده. <تصفيق> اینا چیه به خودت آمیزون کردی زن؟ اینا خوشگله ای بد نیستن از کجا اومدن؟ اه خریدمشون خریدیشون؟ آه. چطوری؟ امروز که داشتم تو خونه جارو میکردم صدای رمزون رو شنیدم که داشت تو داد میزد الانگو دارم انگوشتر دار دارم منم زود خشت طلا رو برداشتم و رفتم بیرون خشت و بهش دادم و اینا رو خریدم تو چیکار کردی؟ گفتم که خشت طلا رو دادم به رمزون و اینا رو ازشون گرفتم یعنی <سؤال> تو اون همه طلا رو دادی به دورگرد و به بدلا بدلارو گرفتی؟ اون دورگرد نبود رمزون بود یعنی هرکی اسمش رمزونه همون یه که میخواستیم خشت طلا رو بهش بفروشیم یعنی <سؤال> این رمزون اون رمزون نبود معلومه که نبود اون رمزون زرگره این رمزون دورگرده دیگه خستم کردی زن با این کارات داری منو از می می‌بری چرا سر من داد میزنی داد میزنم چون یه جوغ تو سرت نیست اه... حالا من تا بیشتر از این اصابونم نشدم از خونه من برو بیرون اه... یعنی چی برم بیرون؟ یعنی برو بیرون دیگه نمیخوام ببینمت دیگه نمیخوام چشمم به چشمت بیافته. نداری دا دا من از خونه بیرون می‌کنم بله دارم از خونم بیرونت میکنم. زود باش برو بیرون از خونه من برو بیرون پورا بیرون زن صادله ها از خونه بیرون کرد زن ساعت ها رفت و رفت تا اینکه با طلوع خورشید به خرابه ای رسید در گوشه ای کس کرد تا اینکه صدای گربهی ای توجهش توجهشو جلب کرد چی بود چی بود آ فهمیدن تو گررب درست درسته آره حتما شوهر چان تو رو فرستاده تا منو برگردونی خونه ولی برو بهش بگو محاله من دیگه پامو تو اون خونه بذارم چی چه تکر داری برو بر, بر منو نگاه میکنی شوهرم منو از خونه بیرون کرده معلومه که دیگه نباید تو اون خونه برگردم پیشت پیش برو بهش بگو ببین گربه اگه تو فردو هم روبروی من وایسی و میو میو کنی و التماس کنی که برگردم خونه محلپامو تو اون خونه بذارم برو خونه و به شوهر جان بگو که من تو اون خونه برو نیستم پیشتی برو دیگه برو دتی بعد گربه از پیش زن رفت زن دوباره به خلوت خودش برگشت زن همچنان غرق در افکار خودش بود که این بار سگ بزرگی بهش نزدیک شد چی سگیه ها زوهر جان دید من با او گربه به خونه بر حالا تو رو فرستاده دنبالم آره فکرده تو میتونی منو راضی کنی برگردم خونه نه خید بودو خونه و به شوهر جان بگو کور خوندی بگو موحال اگه من از این به بدپاماتو اون خونه بذارم برو دیگه برو تخه تخه تخه لازم نکرده برای من صداتو بالا به و به امهل تماس کنی ببین به دست و پامم که بیافتی من به خونه بر نمیگردم اگه تا خود صبحم و بایستی وقت کنی موحاله باتو رو آبی افتم برم خونه برو دیگه برو برو اینو به شوهر جونم بگو برو مدتی بعد سگ هم راه خودشو گرفت و از اون زن دور شد زن دوباره به خلوت خودش برگشت اما طولی نکشید که صدای زنگولهی که به شطوری آویزون بود توجه زن جلب کرد این صدای چی؟ ای بابا تو دیگه هستی؟ بابا بابا بابا, بابا شوهر جان دیر من با گرمه و سگ به خونه نرفتم این بار یه شطور بزرگ و دنبالم فرستاده. آره تو رو شوهر جان فرستاده. <تصفيق> حتی اگه حرفم نزنی بازم من میفهمم که کی تو رو فرستاده دنبالم چی؟ چرا داری همینطوری ای منو بر رو بر نگاه میکنی؟ میدونی چیه آبجی شطار؟ شوهرم منو آخونه خونه بیرون کرده آخه من چطوری میتونم دوباره به اون خونه برگردم؟ ای بابا چقدر اصرار میکنی؟ حتما شوهرجان بهت گفته تا منو با خودت نبری خونه به اون خونه بر نگرد ها؟ باشه باشه ولی یادت باشه که من فقط و فقط به خاطر تو, او تو او و اون سنگونه خوشگله به خونه بر نه نه جانه جانه دلم نمیاد ناامیدت نامید کنم حالا افسارتو بده دست من آفرین بر برین تو با هم بریم خونه بیا بیا آبچی شطور بیا بریم که تا خونه کلی راه داریم بیا زن ساده افسار شطور رو به دست گرفت و به طرف خونه رفت. وقتی به خونه رسید در زد و شوهرش هم درو در باز کرد. شوهر به محض دیدن زن عصبانی شد. اما همین که چشمش به شطور افتاد لبخندی زد و زنشو به خونه دعوت کرد. زن و شطر وارد خونه شدن ناگهان مرد متوجه شد که بار شطر چیزی نیست. جز طلاف و جواهر آه. آه. آه. این،, این،, این شطور رو کجا پیدا کردی زن تو خرابه این شطور با این باره با عرضشی که داره خب تو خرابه چی کار میکرد؟ امن میپرسی خودت آبچی شد تو رو فرستادی دادی من تا به من ارتماس کنه بیام خونه بعد امن میپرسی که تو خرابه چی کار میکرد؟ آره آره یادم اومد نمیدونم وقتی از این خونه بیرون رفتی چقدر دارم برای تنگ شد برای همینم این شطا رو فرستادم دنبالت تا پیدات کنه و برد گردون خونه شوهرجان شوهرجان شوهر به این شرط اومدم خونه که دیگه سرم داد نزنیم چشش چشش چاش من کی باشم که بخوام سرت داد بزنم اصلا وقتی ما این همه مال و سیروت داریم تعلیلی نداره که با هم دعوا کنیم و منم بخوام سرت داد بزنم یعنی؟ یعنی دیگه من خونه بیرون نمی کنی. معلومه <تصفيق> که نه به بارون شطور نگاه کن مانی که سروتمند شدیم سروتمند شدیم حالا میخوای با این آبچی شطور چیکار؟ کار کنی؟ معلومه تلاه جوائراتشو بر میدارم و قایم میکنم خودشم سر میبارم تو با گوشتش خورمه درست میکنیم بعدم یه چاوزد همین نیاد میکنم و اسطوخوناشو تو چا چال میکنم خلا و جواهراتی رو که بار شتور بود در گوشه پنهان کرد و شطر رو زب کرد و گوشتش تکه تکه کرد زن هم با گوشت شطر قرمه خوشمزهی درست کرد و مرد هم استخونهای شتر رو در چاهی که وسط حیات کنده بود ریخت قافل از اینکه اون شطر یکی از شترهای کاروان پادشاه بود که از قافل جدا شده بود و تونسته بود خودشو به خرابه برسونه از اون طرف هم پادشاه وقتی فهمید که یکی از شتورهاش با بار طلا و جواهر گم شده پیرزنی رو مأمور کرد تا به خونه های شهر بره و ببینه کدوم خونه گوشت شتور داره پیرزن رفت و رفت تا اینکه به منزل زن ساده لوح رسید آها می مشک پر کنم دیگه کاری نداره آها خوب اینم این چی کیه؟ کی رو سلام سلام بخترم من, من یه پیرزن ناتوانم مادر دخترم آمیلست سو پیارشم گوشت شطوره میخواستم ببینم تو تو خونت گوشت شطور داری قدری به ای بیم اره اره اتفاقا همین بزرگو سر بریدیم و گوشتشو قرمه کردیم بیا بیا تو یه پیاله بهت گوشت شطور بدم به فرما تو به فرما پیرزن وارد خونه زن سادلوه شد و زن سادلوه هم یه ظرف بزرگ پر از گوشت شتر به پیرزن داد. همین که پیرزن خواست از خونه بره بیرون، شوهر زن سادلوه از راه رسید و متوجه ماجرا شد و پیرزن و در چاهی که استخانهای شطر انداخته بود انداخت. چند روز بعد، وقتی پادشاه متوجه غیبت طولانی پیرزن شد، فهمید که براش اتفاقی افتاده. پادشاه چند نفر رو معمور کرد تا پیرزن رو پیدا کنند. معمورای شاه گشتن و گشتند تا اینکه رد پیرزن رو در منزل زن ساده لح پیدا کردن و زن و شوهر رو به دربار پادشاه بردند. جناب پادشاه، جناب پادشاه به خدا اشتباه شده ما کاری نکردیم که معمورای شما آوردنمون اینجا شاکت شوملون، یعنی چی کاری نکردی؟ تو هم شطور منو دزدیدی هم پیر زنی رو که به خونت اومده بود سر به نیست کردی کی این به شما زده جناب پادشا؟ زنه دینا رو به مامورای ما گفته اون حتی به ما گفت که شطوری با بار طلا و جواهر رو هم در خرابه پیدا کرده بعد هم گفت که تو چه بلایی سر اون شطور رو بردی زنم؟ زنم دیوونه هست؟ عقل درست حسابی نداره یعنی چی زنت دیوونه؟ یعنی این که این زن آقل نیست که بخواییم به حرفاش اعتماد کنیم اون دیوونه است دیوونه تو،, تو،, تو چطور میتونی اینو به من ثابت ثابت کردنش کاری نداره جناب پادشاه. یکی از مهموراتونو با من روونه کنین تا با من به خونه ما بیاد اون مهمور به چشم خودش میبینه که این زن چقدر نادونه. شاه درخواست مرد و قبول کرد و یکی از معموران باهوشش رو همراه زن و مرد به خونه زن سادله فرستاد وقتی به خونه رسیدن مرد برای اینکه دیوانگی زنش رو به معمور پادشاه ثابت کنه از زنش سؤالاتی کرد ببینم زن یادت هست با آه. پشمایی که چند روز پیش خریدم چیکار کردی؟ چی آره آره یادم یادمه اونا رو دادم به دخترخاله قورباغه تا برام بریزه ولی دو دختر خاله قورباغه پشمو برداشت و فرار کرد. اون منو فریب داد منم برای اینکه ازش انتقام بگیرم خونه‌شون رو خراب کردم و خشت طلاییه که خونه‌شون بود با خودم به خونه آوردم. فریب، آفرین. آفرین. آفرین. حالا برام بگو خشت طلا رو چیکار کردی؟ کرد تلا... آه آه آه. خشت طلا رو دادم به رمزوونه. این الانگوها و انگوشترها و کشبارها رو ازش آفر. درسته بعد من چی کار کردم؟ وقتی شنیدی که خشته چلا رو دادم به دوره گردی که اسمش رمزون خوب. بود تو هم عصبانی شدی و سرم دل زدی و من عخونه پیرون کردی منم رفتم و رفتم تا به یه خرابه اون شبیه که قهر کردی من کیو دنبالت فرستادم تو تو هم او او خانوم ما باجی میومیو او آبجی شد تر دنبالم فرستادی هر سر داشن اومدن خرابه دنبالم تا من راضی کنم برگردم خونه من هم خرسان با آبجی شد تر اومدم خونه آبجی شد تر چون الله از فرمونه الله از فرمون همه یادداشت بال من این معمور پادشاه باید بریم کجا میخواییم بریم؟ معلومه باید برگردیم دربار پادشاه پادشاه منتظرمونه خب من چی کار کنم؟ <تصفيق> تو نمیخواد کاری کنی فقط و فقط مراقب این در خونه باش. آره همین مراقب در خونه باش تا من برگردم. اه، یعنی من با تو نیام به دربار پادشاه؟ چرا چرا اگه خواستی میتونه به دربار پادشاه بیای. ام. ولی خب مراقب در خونه باش. آ در خونه آه. باش. خب دیگه. شوار ما بریم بریم بریم بفرمایید بفرمایید. همراه معمور پادشاه به دربار پادشاه رفت. مدتی بعد، وقتی به دربار رسیدن، معمور سیر تا پیاز ماجرا رو برای پادشاه بازگو کرد و از نادام بودن زن سادلوه گفت. معمور در حال حرف زدن بود که ناگهان نگهبانان دربار اطلاع دادند که زن سادلوه وارد دربار شده. این بود جنابه پادشای، مزارشه من بو، کجاست؟ شعر جانم کجاست؟ تو اینجا چی کار می کنیزن؟ ببینم این در چیه که رو دوشته؟ اه؟ اه ای وای خسته شدم کمرم برید، خسته شدم تفسیر تویی که از آدم خواسته های عجیب قریب داری شو خیلی خوب، خیلی خوب، اون در رو زمین، در رو بزار زمین باشه، باشه شدم. چقدر زنگی بود میشه بگی اینجا چه خبره و چرا این در روی دوشت گرفتی و به دربار اومدی اه... چه پادشاه پادشا ببین من چقدر بدبختم بختم که باید موازب در به این بزرگی باشم ببینم منظور چی؟ شوهرم وقتی داشت از خونه میرفیرون ازم خواست که موازب در باشم خب منم میخواستم بدونم جانم وقتی میاد اینجا به شما چی میگه با کلن افتادم به جون خونه خونه رو خراب کردم و وسایل زیر خاک قایم کردم تا کسی اونا رو چرا این کارو تردی چرا این کارو تردی بدار حرفشو بزنی بعدشم این در رو از جدیه رو فردم و اندختم رو دوشم تا به سفارش شوهر جانم عمل کرده باشم و چشی مواظبش باشم آه، آه، حالا اومدم ور تا ببینم اینجا چه خبره با سرنوشتمون به کجا خط میشه آه. دقیقا گربانم یعنی تو خونه با کلنگ خراب کردی زن آره دیار تو خودت گفت هر مواظبی بر باشن درباره خونه و زندگی که اینکه خونه باشم که حرفی نزدی زدی ایداده میدام ایداده میدام بیچاره شدم بیچاره شدم بدبخت شدم دیدین جا فادشم دیدین قربان دیدین هرچی درباره این زن گفتم راست بود دیدین این زن از عقل و حوش بهرهی ای نبرده ایداد ای ای خراب پادشاه که به دیبانگی زن یقین پیدا کرده بود دستور داد که مردو آزاد کند. مرد به خونه رفت و وقتی به خونه رسید با خوشحالی همه طلا و جواهری که در حیات دفن کرده بود بیرون آورد و بار اولاقی کرد و برای همیشه زن سادلوه و اون شهر رو تد. بله دوستان اینم از افسانه زن سادلوه که از افسانه های ایرانیه و به هر خاننده و شنونده ای تلنگر میزنه که کمی هوش و ذکاوت میتونه زندگی و سرنوشت بهتری رو برای آدم رقم بزنه. تنظیم برای رادیو سهیلا خدادادی راوی ماندانا محسنی بازیگران مهدی تهماسبی، محروخ افزلی، راضیه مومیوند، علی اسقر دریایی محمد رضا قلمبو کارگردان بهرام سروری نژاد افکتور محمد رضا قبادی فر صدابردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه ها رنگی از زندگی است. افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانهای دیگر بدرو